با پیچی که در دستش بود به اتاقک برگشت شوه نورانی خورشید از جرز میان برخی از سنگهای دیوارهای اتاقک به درون تابیده بود اجاق خاموش شده بود نان را درون کیسهی پیچی و گوشهی گذاشت آمد و بالای اجاق سنگی ایستاد با چوب خاکسترها را کنار زد گلهای آتش از دل خاکستر بیرون زدند و درخشیدند آنها مال سرگین خشک گاو بودند که ساعت‌ها آتش را درون خود زنده نگه می‌داشتند دوباره روی گل‌های آتش را با خاکستر پوشان تا باز هم زنده بمانند وقتی کارش تمام شد زیر لب چندبار گفت چولی چولی روی یکی از سنگ‌های اجاق نشست و به فکر رفت ماجرای شب گذشته را از اول مرور کرد وقتی به آخر رسید هنوز نمی‌فهمید چه اتفاقی افتاده نه به خواب شبیه بود و نه به واقعیت اما احساس خوشایندی داشت دلش روشن بود به خاطر آن همه کرامت و محبت بغزش گرفت میخواست هر چه زودتر چولی را ببیند او را بشناسد این مرد عجیب ادامه همان همون نورانی زندگیش بود شاید گفتنی های بیشتری از حادثه دیشب داشت منتظر چولی ماند مردی آواره کوه و دشت بی خانمان، رازالود، ایستاده در آستانه واقعیت و خیال. در همین حال از پشت سرش صدایی شنید. سر برگرداند: موش بزرگی روی خار خشک تلمبار شده در گوشه اتاق میدوید. بلند شد. موش خزید زیر یکی از سنگهای دیوار رو رفت. چند بار طول ارتاقک را قدم زد. گروس نش بود. به سراغ کیسه غذا رفت به اندازه یک کف دست از نان چوپان کند و بقیه را گذاشت لایان و گفت: چولی. احساس کرد عطر گوارای نان درون اتاق پیچید برای اینکه تکنان را یک بار نوالد تکی از آن میکند و میگذاشت توی دهانش و آنقدر میجوید تا مزه ی نان زیر زبانش بماند خرد و تمام کرد و این بار با خیال راحت به اطراف نگریست یک بار دور اتاق گشت زد از پشت به شیبه دره تکه داده بود روبرویش مسیل سیلاب بود پوشیده از علفهای بلند و آبچندهای کوچک که به هنگام باران یا ذبح شدن سری برفهای بالادست به صورت نهری پر قدرت از مسیر رو به پایین جاری میشد به همین دلیل هم اتاقک را بالا ساخته بودند تا از سیلاب در امان باشد شیب دره از هر دو سو سرسبز و پر از گلهای گون و شقایق بود بالاتر قله سبلان دیده میشد که انگار برای تماشای دره سرک میکشید و نزدیکتر آمده بود چند پاره ابر سفید ای اطراف قله حلقه زده بودند عطر گلها و گیاهان همراه با گرمای ملایم خورشید درون دره پیچیده بود از مسیر گوسفندها رفت و به بالای تپه رسید از آنجا اتاقک به سختی دیده میشد. میان ساقه های بلند بابا آدم و خار گم بود آن بالا افق گسترده تر می‌شد با تندتر میوزید و در پره گوشش می‌پیچید و او می‌کرد های درشت قهوهی در حال جنب جوش بودند پروانه های آبی کوچک روی گلها ها می نشستند و دوبال خود را می بستند و جزی از برگ ها می شدند پایین دست چند آبگیر بود که نور خورشید در آن آنها می درخشید همه جا سبز بود جز قله که یک دست برف پوش بود و دامنه سفید برف تا نزدیک تپه کشیده شده بود دوباره به دامنه ها نگاه کرد مهر رقیقی آنجا را پوشانده بود از صدای پارس سکه ها و زنگوله ی بزها خبری نبود. بر زمین نشست و زانوهایش را بغل کرد. راه‌های باریک مان رو مثل نخ‌های در هم تنیده رو به بالا کشیده شده بودند. می توانست هر ای را از آن بالا ببیند و غافلگیر نشود. به بنفشه در فکر کرد. لابد از دیشب یا امروز صبح در آنجا قوقا بود. حتما جاندارم ها ریخته بودند و همه جا را گشته بودند و بیشتر از همه خانه ها خانه آنا را و از او خواسته بودند جای نونش را بگوید. ترسانده و عذیتش کرده بودند همینطور طور سنا و صفورا را اینها را بیش از همه سرخان زله میکرد برای خود هم که شده کتکشان میزد بعد هم سراغ ملا می رفتند و از او هم بازجویی میکردند. از مله درباره سابقه آشناییش با او میپرسیدند. نگران حال آنها شد. خودش را تا حد زیادی در می میدید. از چولی خیالش راحت بود چوپان گفته بود که او حرف نمیزند. از آن گذشته چولی او را از چنگ تنگ و گرگ نجات داده بود و به اینجا آورده بود. چطور ممکن بود مخفیگاهش را به جاندارم ها نشان بدهد؟ میمان چوپان پیر اهل مستاناباد که او هم چیزی نمیدانست. جوانی شهری برای جمع کردن قارچ به پای قله صعود کرده بود. این خبر نمیتوانست عجیب و غیرادی باشد. ماند یک نفر دیگر که به او فکر نکرده بود و آن هم استوار بود. هنوز صدای برخورده سر او با سنگ توی گوشش بود انگار که هندوانه رسیده ای از دستش افتاد روی سنگ و با صدای بلندی شکست از این پیش آمد خوشحال نبود ته دلش مرگ استوار را نمیخواست چنین قصدی هم نداشت مقصر خودش بود از یک جا و یک نواخت نشستن شد نایهان زانوهایش را از چنبری دستهایش رها کرد و به پشت دراز کشید. خورشید به صورتش تابید گردنش را اندکی چرخان تا صورتش با خورشید مماس باشد احساس راحتی و آرامش میکرد زمین نرم و مهربان بود خستگیش را انگار مکید و از او گرفت. خود را در راحتترین وضعیت قرار داد و دیگر تکان نخورد بعد از چند نفس عمیق آرام و شمرده نفس کشید. تا به حال در زندگیش به چنین جایی نیامده بود حتی در رؤیاهایش هم تصور چنین مکان زیبا و شگفتی را نکرده بود قله سبلان بالای سرش بود گمان می کرد اگر دستش را دراز کند می تواند یک مشت از برفهای سفید قله را بردارد و روی لبهایش بمالد کمی از آن بخورد و بقیهش را روی گونه هایش بگذارد باد آرام می و در گوشش لالایی می خوند سنگین شد آهسته باز و بسته می شد به قله نگاه کرد بعد به آسمان صاف و آفتابی نور چشمهایش را زد این بار پلکایش روی هم افتادند و دیگر نه قله را دید و نه آسمان را احساس کرد سردش است روی آسمان را لایه ای نازکی از ابر مثل پرده پوشانده بود با این حال خورشید میتابید و آویرهای پایین دست می درخشیدند سرازیر شد کم کم می‌لرزید نمیدانست چرا آنقدر سرد نبود اما اون سردش بود نزدیک آبگیرها بوسته زمین زیر پایش ترک ترک شد گله به گله از هم شکافت و موجوداتی به رنگ سفید میان شکاف های زمین شروع به تکان خوردن کردند. شنیده بود آنجا قارچ بزرگ سفید زیادی می روید که با سرعت زمین را می شکافند و بیرون می روید. و خیلی زود یک منطقه از قارچ سفید که هر کدام به بزرگی یک تشت است پر می شود. اما آن چیزهایی که پیش چشمهایش از زمین بیرون می اگرچه سفید و بزرگ بودند قارش نبودند. قارچ زمین همچنان دهان باز می کرد و آنها بیرون می آمدند رفته رفته بیشتر سردش شد با آسمان نگاه کرد از خورشید نشانه اندکی مانده بود باد تندی میوزید. وزید هو میکشید کشید و می خواست ساقه و باب آدم و کارشترها را از ریشه بکند و ببرد علف ها می نالیدند. هر کدام به صدایی محزون رو بگید خرشید را دید که درون آبگیری افتاده و زیر آب مانده موجودات سفید پوش از شکاف بیرون آمده بودند آنها همه آدم بودند اما پیچیده در کفن و صورتهایشان دیده نمیشد. انگار از چیزی می پریشان بودند جیغ‌هایشان شبیه ناله بود دیگر نتوانست قدم از قدم بردارد میترسید در یکی از شکاف بیفتد، ایستاده بود دلش می‌خواست او هم فریاد بزند اما زبانش بند آمده بود صدایش به زحمت در می آمد شبیه همون کفمپوش ها جیغ می کشید و می‌ترسید و میلرزید و نمیدانست به کجا پناه ببرد کفن پوش ها همه جا را پر کرده بودند صدای جیغشان مثل چاقو پوست و گوشت را میشکافت آنها به صورت این در هم به طرف قله میرفتند. هوا رفته رفته تاریک میشد. خورشید همچنان در آبگیر گیر کرده بود باد به کوب می وزید و زی می و میخواست سنگ و صخره را از جا بکند. تپه ها و با اللفها محکم به زمین چسبیده بودند. آنها هم جیغ میکشیدند و نمیخواستند کنده شوند. جف پوشها از کنارش رد میشدند و به طرف قله میرفتند. صورتهایشان پوشیده بود، هیچ کدام را نمی شناخت. از ترس داشت منجمد میشد. باد افتاده بود به جان برفهای طلم بار شده روی قله آنها را به آسمان پوش میداد. ناله ها هر لحظه بلندتر و بیشتر می شدند. برف قله تمام شد سنگ ها و سخر ها آشکار شدند این بار باد به جان آنها افتاد از پیکر قله جدایشان می کرد و در آسمان به جای نامعلوم می برد طولی نکشید که قله شکافت ابتدا آب روی آن رو به آسمان فواره کرد بعد نوبت خاک و سنگ ها شد گلویش خشک شده بود احساس می کرد میخواهند از حدق در بیایند بعد از پشت او را به سمت قله می داد. اما او نمی رفت و ایستاده بود و ناگزیر تماشا می کرد و می شنید. بله داشت پودر می شد. تراشیده و کوتاه می شد. کفم ها زار می زدند و با صدای حزین می نالیدند. زن و مرد کوچک و بزرگ. در آن میان صدای یکی از آنها به گوشش آشنا آمد. این صدا را در جایی شنیده بود. کمی احساس آرامش گرد. صدا در گوشش میپیچید. چشمهایش را با سرعت باز کرد. اول به آسمان نگاه کرد. آسمان سر جایش بود اما خورشید به طرف مغرب خزیده بود. سرچرخان به طرف قله سبلان ایستاده بود بالای سرش. اما توده ای ابر تیره از جپه شمالی آنتا تا نزدیکی های مکانی که او دراز کشیده بود کشیده شده بود. خیالش راحت شد. هنوز بلند نشده بود که همان صدای آشنا را شنید. او را به اسم میخواند. بلند شد و نشست و به اطراف نگاه کرد صدا از میان توده ابری می آمد که از قله رو به پایین آویخته بود صدا نه مردانه بود نه زنانه وقتی چند بار به دقت گوش کرد صاحب صدا را شناخت پرواز بود از یا بلند شد و رو به قله ایستاد و فریاد زد پرواز پرواز صدایش پیچید چند لحظه مکس کرد و این بار بلندتر گفت کجای پرواز بگو؟ اینجام، اینجا. صدا از درون توده مه می آمد به آن طرف راه افتاد. سنگین و کوفته بود. مفاصلش درد می‌کرد و سخت قدم بر برمی‌داشت. خسته بود. هر چند دقیقه یک بار صدایش می‌کرد. همونجا باش، حالا می‌رسَم. بلندتر قدم برداشت. از شوق دیدن پرواز می‌خواست پرواز کند، اما نمی‌توانست. مدتی بعد به اولین لایه‌های های مه رسید. باز صدا زد. کجای پرواز؟ من اومدم. جواب شنید. اینجا. نفس نفس زنان درون مه پیش رفت. بوی گلسنگ و جلبک آنجا پیچیده بود. عرق کرده بود. به کندی بالا می رفت. گاهی می استاد و نفس تازه می کرد و به درون لایه‌های های در هم شوندهی مه نگاه می کرد. مدتی بعد به برف رسید. پایش را روی آن گذاشت تا مچ فرو رفت. حالا دیگر پیشروی سختتر شده بود برف متراکم و سفت بود وقتی پایش در آن فرو میرفت به زحمت بالا میآد در حال رفتنگاهی می استاد و صدا می کرد رفته رفته صدای پرواز از فاصله نزدیکی شنیده میشد می, شد. می استاد و با دقت به درون مه خیره می مند. احساس می کرد پرواز را به صورت طرحتی ای میبیند که درون مه ایستاده و به او نگاه می کند. اما وقتی به آنجا می رسید خبری از پرواز نبود گمان کرد دچار توهم شده و آنچه درون مهمی بیند خیال است. از این رو ایستاد و با دقت به پیش پای خود نگاه کرد. از آنچه دید شگفت زده شد. پیش از کسی دیگری از این یال بالا رفته بود و حالا جای پاهایش روی برفها دیده میشد. برای اینکه بتواند بهتر ببیند خم شد و به جای پاها چشم دوخت. تازه بود و به اندازه یک کف پای یک نوجوان، سر بلند کرد و این بار با صدای بلندتری داد زد. پرواز، آهای پرواز، جایی پا تو دیدم، بگو کجایی تا پیدات کنم من اینجا هم، گفتم که اینجا هم. پس همونجا به منتبیم پیشت، از جا تکون نخور پا جای پای پرواز گذاشته پیش رفت جلوتر از او کسی انگار حرکت می کرد، راه میرفت خسته و عصبانی شد پس چرا اینطوری می کنی پرواز، من نفسم بالا نمیاد اون وقت تو مثل گنجش بالا میری یا جا به منتبیم بهت برسم جواب آمد من همینجا هم نزدیک تو چرا نمی بینی؟ دید شده بود صدا از چند متریش می آمد. پس چرا نمی دید. ناگهان دچار تردید شد ترسید به نظرش پرواز هم کفن پوشیده بود کفن سفید که از لایه های در حال گذار مه قابل تشخیص نبود. آنقدر ترسید که دیگر نتوانست چیزی بگوید. یادش آمد که صدای پرواز را در خواب میان صداهای دیگر شنیده بود و با صدای او بیدار شده بود. بر زمین میخکوب شد و پیش نرفت. این بار زانوهایش نه از خستگی که از ترس میلرزید. سرمای درونش با سرمایه بیرون ممزوج شد و او را مثل آدمک یخی در دل برف کاشت. تا اینجای کار هم پشیمان بود. احساس میکرد اشتباه بزرگی کرده که در پی صدا این همه راه آمده. اما وقتی به پیش پایش شش دوخت دید نه تنها صدا او را تا اینجا کشنده بلکه جای پا هم بوده. جای پایی تازه که مال چند دقیقه پیش است. آهسته رو به پایین چرخید و آرام گام براشت. نمیخواست سر و صدا بلند شود نمیخواست کسی بداند که او ترسیده و حالا میخواهد برگرده. نمیخواست پرواز فکر کند که او قصد دیدنش را ندارد. اول آهسته سرازیر شد بعد تندتر و رفته رفته بیان که خود بخواهد شروع به دویدن کرد. از همان راهی که بالا آمده بود پایین می رفت. احساس می کرد کسی تعقیبش می کند صدای پایش را می شنید کسی که پشت سرش می آمد، پرواز بود می گفت کجا مگه نمی منو ببینی؟ مگه برای دیدن من نیمده بودی؟ میدوید و با خود می گفت نه nah, نه nah, من به دیدن هیچ کس نایمده بودم من اصلا نیمده بودم و سرعت می گرفت توده مه به صورتش می خوند. پایش به پار سنگ ها گیر می‌کرد، سکندری می‌خورد، تلو تلو می کرد می بیان که به پشت سرش نگاه کند آنقدر دوید تا به انتهای صفره برفی رسید پایش را روی علف ها گذاشت مدتی بعد برق تیقه های خورشید را هم دید مه رقیق تر شده بود به انتهای آن می رسید اما همچنان می و پایین می آمد. وقتی از درون مه بیرون آمد به اطراف نگاه کرد. آشنا نبود. قله پشت پرده مه بود و دیده نمیشد جلوتر رفت دور خود چرخید و به دنبال اتاقک و تپهٔ مشرف بر گشت. مسیل را یافت فهمید که تر آمده و دوباره برگشت و پس از کمی جستجو شبه اتاقک را میان در تشخیص داد مثل گمشدهای که پس از مدتها راه خانهش را پیدا کرده باشد با عجله به طرف اتاقک رفت وقتی به آنجا رسید با همان شتاب داخل شد و نشست و به دیوار تكیه داد و پاهایش را دراز کرد. قلبش به شدت می تپید و با هر تپش کمرش کمی از دیوار فاصله می گرفت و دوباره برمیگشت. گشت. چشمهایش را بست و سرش را روی یکی از سنگهای دیوار گذاشت. با ده اصرگاهی، هنگام عبور از میان در خودش را به اتاقک می کوبید و سود زنان از میان جرز سنگها به داخل نفوظ می کرد. صدای چند کلاغ آمد. نمیدانست آنها از کجا می آمدند و به کجا می رفتند. مدتی همان طور ماند، سوز بادی که به درون میخزید بدن عرق کرده اش را میگزید آهسته از جا بلند شد پتوی کهنه را که لبه ای آن ریش ریش شده بود از گوشه اتاقک برداشت و محکم دور خود پیچید و برگشت و دوباره نشست و از چارچوب آستانه در نگاهش را به آسمان در حال رنگ باختن دوخت. با تعم برف میداد سرد و گس بیشتر به پتو پناه برد گاهی فکر می کرد بلند شود و از یال کوم سرازیر شود و خودش را به یکی از روستاهای دامنه برساند. اما دیر بود. نه روستایی می شناخت و نه راه را بلد بود. ناچار باید تا صبح زیران سخف می تا هوا روشن شود. هم گرستنش بود و هم تشنش ولی حسله برخواستن و خوردن نان و تهیه آب را نداشت. گویی از توان توهی شده بود. همانطور که نشسته بود خوابش برد. وقتی که بیدار شد شب شده بود. از قاب در چند ستاره در آسمان سوسو میزدند و مهتاب رنگی تپه را روشن کرده بود. بلند شد. لنگه چوبی را به آستانه در تکه داد و رفت گوشه اتاقک و روی علوفه خشک دراز کشید و پتو را روی خود انداخت. طاقت درک حوادث گذشته را نداشت. خواب برایش گوارا از بیداری بود. نمی‌خواست به چیزی فکر کند، کسی را ببیند. می‌خواست در خواب فرو برود. در آن بغلتد گم شود. خواب را با خودش به هر جاکه می خواهد ببرد و برد با صدای سوختن ساقه های خشیده خارشترها بیدار شد. پشت پلتهایش گرم و روشن بود. اتاقک بوی دود میداد. چشمهایش را آهسته باز کرد بازی سایر روشن شعله ها را روی سقف پوشالی اتاقک دید. به طرف نور چرخید، اجاق روشن بود. شعلهٔ هیزم از میان سنگهای آن بالبال میزد مردی به نمازی ایستاده بود نزدیک بود سرش به سقف اتاقک بخورد شانههای پهن بازوهای کلفت و دستهای درشتی داشت کتش از پشت بازوهایش شکاف برداشته بود و لباسهای زیرش پیدا بود وقتی روی کندههای زانویش مینشست رانهایش از درون شلوار ژنده و پارهاش مثل كندهٔ درختان كهنساله بید پیدا میشد آهسته و با حوصله میخواند آتش لرزان اجاق روی صورت درشت مردانه اش بازی میکرد کلاه سبز دست بافی به سر کشیده بود ریشه بلندی داشت وقتی نمازش را تمام کرد صورتش را به چپ و راست گرداند و نگاهشان به هم افتاد چشمهایش مهربان را گیرا بود پس از نماز از توبره بزرگی چند سیب زمینی در آورد آتش اجاق او را جابجا کرد تا سیب زمینی ها را بپزد اسماعیل به بهانه دود اجاق چند بار سرفه کرد اما مرد با دقت مشغول چیدن سیب ها زیر گلهای آتش بود و گویا نمی شنید. اسمایل شد و نشست و پتو را رو از روی خود کنار زد و آهسته برسید. چولی؟ دستهایش چند لحظه از حرکت باز ماندند و دوباره مشغول شدند. اینجا رو تو ساختی اسمتم چولیه. چولی برگشت و به اسمایل نگاه کرد. سرخی شعله های آتش گونه هایش را گل انداخته بود. از تنگه تا اینجا چطور من آوردی؟ فکر می کنم خیلی راه باشه؟ باز هم حرفی نزد. اگه نجاتم نمیدادی حتما میمردم چرا این کارو کردی؟ تو که منو نمیشناختی؟ جوابی نشنید به نظرش آمد او نمیتواند حرف بزند و احتمالا لال باشد ادامه داد: من نتونستم نماز بخونم. این بار چئولی برگشت و نگاهش کرد. بیان که دهم باز و لب به جنباند با چشمهایش پرسید چرا اسماعیل با صدای فروخورده این جواب داد آب نبود چولی زیر لب با صدای کلوفتی گفت که بود خوشحال شد پس بلدی حرف بزنی نمیخوای بگی چرا من نجات دادی چولی سرش را تکان داد و آهسته گفت نه چرا نه ساکت ماند از کجا فهمیدی من اونجام ملا گفت ملا گفت تو اونو میشناسی سر بزرگش رو به علامت تأیید تکان داد خب از کجا میشناسیش؟ جواب نداد حالا سیبزمینی ها رو از زیر خاکستر بیرون آورد و با دست فشار میداد تا ببیند پختند یا نه اینجا گرگ آدم خار هست؟ گرگای اینجا آدم خار نیستن پس اون گرگ چی؟ از اون طرف دنیا اومده تو دیدی؟ دیدم بعد سیب زمینی ها را پوست کند و ریختشان توی کاسه لهیده و دود زده. اسمایل هم به کمکش آمد، سیب ها داغ بودند، دستش را میسوزاندند. ناچار بالا و پایین میداخت و میگرفت و توی دستش میچرخاند فوت میکرد. اما چولی با دست های پت پهن انگشتان کلفتش سیب های بزرگ را مثل گردو و بر می داشت بیان که به گرمای آن اهمیت بدهد پوستشان را راحت میکند و میداخت توی کاسه. وقتی کارشان تمام شد، چولی چند نان لواش از توی کیسه این مشکی بیرون آورد و گذاشت وسط. بعد لواشی را برداشت و آن را چند تا زد. یکی از سیب زمینی ها را گذاشت وسط نان و سپس با دو انگشت پت و پهن خود سیب زمینی را له کرد و مالید روی لواش و پیچاند و فرو برد توی دهانش و در همان حال با اشاره ی چشم و ابرو از اسماعیل خواست مشغول بشود. بوی اشتهاور سیب زمینی پخته و لواش پیچیده بود توی اتاقک. دست دراز کرد و یکی از لواش ها را برداشت و او هم مثل چولی مشغول شد. بعضی از سیب زمینی ها هنوز خام بودند، بعضی هم سوخته و سیاه. با این حال خام و پخته و سوخته همه با هم خورده میشدند. اجاق گاهی جرقه میزد و سایه‌ها روی سقف و دیوار لرزان و لغزنده بازی می‌کردند. اول چولی کنار کشید و رفت سراغ کتری سیاهی که روی اجاق قلقل میجوشید. در آن را برداشت و یک کفش چای ریخت توی آن کتری را گذاشت روی زمین. این بار بوی چای پیچید. گاه تند باد شبانه هوکشان خودش را میکوبید به دیوار اتاق و راهش را میکشید و میرفت به جای نشناس. پس از رفتن باد دوباره سکوت میشد. چولی حرف نمیزد. لفرو رو بسته بود. اما دستهایش آتش اجاق را تنظیم میکرد تا شعله آن به یک قاعده و قرار بماند گاهی ناگزیر میشد بر اجاق بدمد تا شعله جان بگیرد و نمیرد وقتی از اجاق خیالش راحت شد از جا برخاست و به طرف در اتاقک رفت در آستانه آن ایستاد شانه های پهنش هم‌عرض چهارچوب بود و سر و گردنش بلندتر از آن پس از مکس کوتاهی بیرون رفت اسمایل نگران شد به گمانش دیگر چولی را نمیدید. بلند شد و به دنبال او از اتاقک خارج شد چولی همان نزدیکی بود روی تخت سنگ بزرگی نشسته بود و به قله نگاه می کرد. محتاب همه جا تابیده بود. اما در آن میان قله بیشتر می درخشید. ستاره درشتی بالای آن چشمک می زد. رفت و پیش او نشست. احساس کرد لبهایش می جنبد. هر دو ساکت نشستند. به جای گرمای اجاق سرمای برفهای قله پوستش را می گزید. از جا بلند شد و به طرف اتاقک برگشت. پشت سرش چولی هم آمد. آنجا گرم بود. روزه چی کار میگونی؟ کجا میری؟ حرفی نزد. دو شیشه خالی مربا برداشت و از کتری چای ریخت. بخار سفید و مهمانندی از دهانه کتری بلند میشد. یکی از شیشه ها را جلوی چولی گذاشت. او به جای قند یک بسته آب نباد پیش کشید. پوست سیب زمینی ها را هم جمع کرد. سفره را بست و گذاشت گوشه اتاق. آخر سر آمد و نشست و مشغول خوردن و چای شد. اسماعیل هم آب نبات انداخت توی دهانش و شیشه مربا را برداشت. داغ بود، دستش را سوزاند، ناشار گذاشت روی زمین. چولی چایش را خورد و ته آن را از در بیرون انداخت و شیشه خالی را گوشه‌ای گذاشت و کنار اجاق دراز کشید. مدتی چشم به سقف دوخت و لب جنباند، سپس چشمهایش را بست. در این مدت اسمایل هم چایاش را خورد. لتهٔ چوبی را جلو در گذاشت و آمد در جای خود دراز کشید. گرمای لذت بخش چای را درون خود احساس میکرد اول صبح از سرما به خود پیچید بیدار شد یادش آمد که درون کلبه ای پای قله سولان خوابیده اختیار زیر لب گفت چولی. و از جا پرید و نگاه کرد. جایش خالی بود رفت بیرون نور خورشید روی برفهای قله و دامنه سبز کوهستان گسترده شده بود با سرعت از شیب تپه بالا کشید نفس نفس زنان خودش را روی تپه رساند و به اطراف نگاه کرد در دوردست مردی را دید که بر یکی از یالها راه میرفت. علم سبزی بر دوش داشت و دور میشد. آنقدر ایستاد و نگاه کرد تا دیگر او را ندید دلش فشرده شد هر دو دستش را شیپوروار دور دهانش گذاشت و فریاد زد چولی چولی صدای سکوت اطرافش را شکست به نظرش چند نفر دیگر در پشت دامن او ها, ها به صدای او جواب دادند چولی چولی